بهار و گل تربنگیز گشت تو بشکن به شازی رخ گل بیخ قمز دل برکن رسید باد سبا قنچه در هوا داری ز خود برون شد و بر خود درید پیراغن طریق سرق بیاموز آموز آب صافی دل به راستی طلباز آب دگیز سر چمن ز دست برد سبا گرد گل کلال نگرد شکنج گیسوی سنبول ببین به روی سمن عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد به عینهی دل و دین میبرد به وجه حسن سفیر بلبل شوریده و نفیر هزار برای وصل گل آمد برونز بیت حزن، حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو به قول حافظ و فتوای پیر صاحب فند